داستان پادشاه حیوانات مردی زنش را از دست داده بود و با دخترش که قشنگتر از اون هیچ کس ندیده بود تنها زندگی میکرد. بعد از مدتی چون خیلی تنها بود و کسی نبود که از دخترش مراقبت کنه به فکر افتاد که باز دوباره زن بگیره. اما متاسفانه گرفتار زنی شد که هرچی که بلا بود سر اونو دختر بیچارهش استدینا آورده بود. یه روز استلینا به پدرش گفت: پدرجون، به جای اینکه بمونم اینجا و تو سری بخورم، میرم دنبال کار کشاورزی. پدرش بهش گفت: حوصله داشته باش دخترم. اما یه روز چون استدینا یه کاسه رو شکسته بود، زن بعد جنس با یه چکش خوابون تو گوششو استرینه چون تحمل نداشت گذاشت و رفت رفت پیش خالش که تو کوف زندگی میکرد خاله استرینا یه جادوگر بود ولی خیلی فقیر بود بهش گفت استرینه عزیز من باید تو رو بفرستم تو صحرا تا مراقب گوسفندا باشی اما تنها چیز با ارزشی که دارم رو بهت میدم اون یه انگشتره وقتی که بهش احتیاج پیدا کردی، این انگوشتر را بذار توی دستت تا کمکت کنه. یه روز صبح که استلینا با گوسفند رفته بود توی صحرا، یه جوون زیبایی رو دید که داره به طرفش میاد. پسر جوون به استلینا گفت، دختر خوشگلی مثل شما چطور میتونه همچین کاری انجام بده؟ بیا با من ازدواج کن. قول میدم که یه زندگی خوب و راحت برات درست کنم. استرینا مثل لب و قرمز شده بود. نیدون باید چه جوابی بده. اما پسر جوان انقدر اصرار کرد تا اینکه استرینا قبول کرد و باهاش رفت. یه کالسکه توی جاده وایساده بود. اونا سوار اون کالسکه شدند و مثل باد به راه افتادن. تمام روز رو راه رفتن تا اینکه جلوی یه قصر زیبا رسیدن. پسر جوون در حالی که اونو میبرد توی قص بهش گفت استرینا این قص در اختیار توه. دستور بده تا هر چی که میخوای براد آماده کنن. من فعلا تنهات میذارم چون باید به کارام برسم. فردا صبح هم دیگر رو میبینیم. و بعدم گذاشت و رفت. استرینا بدون اینکه که بتونه یک کلمه حرف بزنه با تعجب نگاه میکرد. احساس میکرد یکی دستشو گرفته اما کسی رو نمیدید. گذاشت تا ببردش توی اتاق باش شکوهی که پر بود از لباس و جواهرات. لباساش درآورده شد. بعد هم لباسای عیونی تنش کردن. استرینا ها همش فکر میکرد که دورورش پر از آدم که بهش خدمت میکنن. اما کسی رو نمیدید. بعد از اینکه لباس تنش کردن بردنش به یه اتاق ای که توش یه میز پر از یه ناهار گرم بود نشست روی صندلی و شروع کرد بخوردن بشخاباش رو عوض میکردن غذا براش آوردن، اما نمی نمیتونست کسی رو ببینه بعد از ناهار چرخی توی قصر زد اتاقای زرد و قرمز با نیمکتهای راحتی زیباترین چیزایی بود که میتونست ببینه او متوجه شد که پشت قصر یه باغ قشنگی هم هست که پر بود از حیوانای مختلف سگ گربه، مرغ حتی قورباغه. چنان قیل و غالی راه انداخته بودن که انگار داشتن با هم جعر و بحث میکردن استرینا خیلی تعجب کرده بود یکم نگاهشون کرد بعدم چون هوا تاریک شده بود و شب شده بود فکر بهتره بره بخوابه رفت توی اتاقی که توش یه تخت شاهزاده خانمی براش گذاشته بودن حتی برای در وردن لباسشم بهش کمک میکردن یه چراغ و یه پیرهن خواب و یه دمپاییم براش آورده بودن استرینا رفت تو تخت خواب همه جا ساکت بود، خوابش برد و تا آفتاب کاملا در نگمده بود، بیدار نشد. با خودش گفت، دلم میخواد یه زنگ بزنم ببینم کسی میاد بهم کمک کنه. تا به زنگ دستد، دید که یه سینی نقرعی با قهوه و شیرینی جلوش ظاهر شد. قهوهشو خورد و بلند شد. لباس تنش شد، موها شونه شد و خلاصه مثل یه شاهزاده خانوم مرتب و منظمش یک کم بعد پسر جوان دوباره برگشت. به استرینه گفت خوب خوابیدین؟ راضی هستین؟ استرینه جواب داد بله. جوون دستش رو فشار داد و بعد از یه مدتی پسر جوون خداحافظی کرد و رفت این کاری بود که پسر جوون هر روز انجام میداد. در غیر این صورت دیگه همدیگر رو نمی دیدن خلاصه دو ماه از این زندگی میگذشت. گذشت دیگه داشت کم کم خسته می شد یه روز صبح بعد از اینکه جوان جوون رفت به خودش گفت دلم میخواد برم یکم توی این دشتای قشنگ دور بزنم و یه هوایی تازه کنم. تا اینو گفت یه کلاه، یه باد بزن و یه چتر آفتابی براش حاضر شد. استرینا گفت پس همیشه یه کسی کنارم هست که به حرفام گوش بده. بذارین یه بار ببینم اتون. شما کی هستین؟ اما فایده ای نداشت. کسی خودش نشون نمیداد. همون لحظه یهو استرینا به یاد انگشتری افتاد که خالش بهش داده بود. رفت اونو از توی کشوی لباساش برداشت و گذاشت توی انگشتش. بعدش هم گفت: "دستور میدم کسی که با هم هست و بهم به کمک می‌کنه رو یک بار ببینم." و یه دفعه یه ندیمه زیبا کنارش ظاهر شد. استرینا خیلی خوشحال شد و گفت: بلاخره کسی رو دارم که باهاش چار تا کلمه درد و دل کنم. ندیمه زیبارو هم گفت خیلی ممنون. بالاخره بعد مدتها که تلست شده بودم و نمیتونستم خودم رو نشون بدم و حرفی بزنم شما به هم کمک کردید که ظاهر شم. ما میتونیم دوستای خوبی برای همدیگه باشیم. و اینجوری شد که استرینا و ندیمش بهترین دوستای دنیا شدن. تصمیم گرفتن با هم تلاش کنن تا راز اون قصر رو کشف کنن. رفتن بیرون و توی الافزار شروع کردن به راه رفتن. رفتند و رفتند. اما راه تمامی نداشت. توی مسیر رسیدم به یه جایی که دو تا ستون اونجا بود. روی یکی از اون ستونا نوشته شده بود بپرس. و روی اون یکی نوشته شده بود بلاخره میفهمی استلینا رو کرد به اون ستونی که روش نوشته شده بود بپرس. بعدش هم بهش گفت من میخوام بدونم کجام. ستونی هم که روش نوشته بود بالاخره میفهمی جواب داد جایی هستی که خوب زندگی میکنی. اما سلینا دوباره پرسید اما چی؟ از این ستون پرسید از اون ستون پرسید اما هیچ جوابی نشنید. اون اما برای اون دو نفر کاملا نشونه بدی بود غرق فکر و خیال شده بودند به راهشون ادامه دادند یکم که راه رفتن به نرده‌های ته باغ رسیدند و اون طرف نرده یه شوالیه‌ی زیبا روی زمین نشسته بود شوالیه تا اونا رو دید پا شد و بهشون گفت اون تو چیکار میکنین مواظب باشین تو خطر بزرگی افتادین شما تو دست پادشاه حیوانات اسیر شدین. اونجا پر از ثروته. پادشاه هر کسی رو که موفق بشه میگیره و میاره اونجا. بعدش هم یکی یکی اونا رو از بین میبره. استرینای بیچاره بعد شنیدن این خبر چیزی نمونده بود که پس بیفته. از شوالیه پرسید چطور باید فرار کنیم؟ شوالیه هم گفت من میتونم کمکتون کنم و شما رو از اونجا بیرون بیارم. من پادشاه پسر هندم. در حال سفر به اینجا اومدم تا شما رو دیدم آشقتون شدم. میخوام شما رو همراه با ندیمتون پیش پدرم ببرم. اون از شما استقبال خوبی میکنه. استرینه که ترسیده بود گفت باشه قبول میکنم که باهاتون بیام. ندیمش گفت حالا که قصی پر از ثروته حیف خالی برگردیم. حالا که پادشاه حیوانام رفته بیرون بریم اونا رو ورشون داریم فردا دوباره بیایم همینجا با هم قرار میذاریم که فرار کنیم شاهساده گفت من چطور تا فردا اینجا تو فضایی که هیچ جایی برای خوابیدن نیست منتظرتون بمونم اینجا حتی یه آلونا کم نیست که من توش بخوابم استرینا گفت من کمکتون میکنم. دوباره و گذاشت توی دستش و فشار داد و گفت دستور میدم فورا یه قصر کوچیک با کلی خدمتکار و کالسکه و همه ی وسایل مورد نیاز اینجا براتون فراهم بشه. و خلاصه با دستور سرینا یه قصر کوچیک وسط دشت یه چیز حیرت انگیزی بود. شاهزاده است، دخترا خداحافظی کرد و رفت توی قصر کوچیکش. استرینا و ندیمش هم برگشتن به قصر و از بالا تا پایین اونجا رو گشتن یه زیرزمین پیدا کردن و رفتن اون تو اونجا پر از صندوقچه بود استرینا گفت یعنی تو این صندوقچه ها چیه؟ در اون صندوقچه ها رو باز کردن یکی از اون صندوقچه ها پر بود از نقره اون یکی پر از جواهرات و یکی هم پر از پول استرینا دوباره انگشترش رو توی دستش گذاشت و گفت دستور میدم همه این طلاها و نقراها و پورا به قصر کوچیک پسر شاهزاده هند منتقل بشه. تا گفت یهو ها, ها خالی شدن. استرینا و ندیمش همینطور که داشتن توی زیرزمین دور میزدن یه یه پله مخفی پیدا کردن. رفتن توی اون پله اما همه جا تاریک بود. یه صدایی دائما می گفت من بدبخت، من بدبخت. اسلینا احساس کرد پاهاش داره می لرزه اما بعد دوباره به یاد انگشترش افتاد. اونو گذاشت توی انگوشتش و همینطور جلو میرفت. رفت. به اتاق بزرگی رسیده بودن. روی یه میز که توی اون اتاق بود پر بود از سر زنها و مردهای مختلف. ها و دستاشونم روی دیوارا و روی یه سندلی آویزون بود. اون سرها دائما میگفتن من بدبخت، من بدبخت. استرین و ندیمش خیلی ترسیده بودن. دیگه واقعا فهمیدن که اونجا مخفیگاه پادشاه حیوانات. یه انبار پر از گندم و ذرت و اولوفه پیدا کردن. بعد با خودشون گفتن اینا هم قضای حیوناست. حتما پادشاه حیونا مردا و زنا رو جادو کرده و به شکل حیوان در ورده. بعد هم سراشونا آورده اونجا و یکی یکی هم اونا رو میخوره. استدین های بیچاره از ترس اون شب اصلا نتونست بخوابه. صبح پادشاه حیونا طبق معمول اومد تا به استدین سر بزنه. باش احوال پرسی کنه و بپرسه که آیا خوب خوابیده یا نه؟ استلینا مثل هر روز صبح در حالی که خودش رو به بیخیالی زده بود با مهربونی جوابشو داد. پسر جوان هم مثل هر روز از استلینا خداحافظی کرد و رفت. وقتی که پسر جوان که همون پادشاه هیونا بود از قصب بیرون رفت استرینا فوراً با ندیمش انبار قله رفتند و هرچی گندم و ذرت و علوفه بود از پنجره ریختن توی باغ. تا حیوانا اونجا جمع بشن برای خوردن اون علوفه ها استرین میخواست حواس اون حیوانا رو پرت کنه تا وقتی داره فرار میکنه اون حیوونا به پادشاه خبر ندن خلاصه وقتی حیوانا مشغول خوردن بودن استرین و ندیمش پا به فرار گذاشتن. رسیدم به اون دوتا ستونی که دیروز دیده بودنش. استرینا ها رو تو دستش گذاشت و به ستون گفت دستور میدم به هم بگید اون امایی که دیروز به هم گفتید یعنی چی؟ یکی از ستون جواب داد اون اما یعنی این که شما نمیتونید فرار کنید. مگه اینکه پادشاه پادشای رو بکشید؟ استرینا پرسید آقا من چطور میتونم این کار بکنم؟ ستون دوباره جواب داد تو باید بری تو اتاق پادشاه حیوونا. یه گردو گذاشته زیر توشکش تو باید اونو برداری ستون تا گفت روی زمین افتاد استرینا با شجاعت و شهامت برگشت به قصر گردو رو پیدا کرد تا اونو توی دستش گرفت پادشاه حیونا فریاد کشید آهای استرین ها تو به من خیانت کردی و همینطور که داشت این حرفو می زد افتاد روی زمین و از دنیا رفت. تا پادشاه حیوونا مرد هیوانای دیگه به شکل واقعیشون برگشتن. یکیشون پادشاه بود، یکیشون ملکه بود، یکیشون شاهزاده بود. همه اون آدما از استرینا تشکر کردن. یکی بهش هدیه میداد و اون یکی بهش میگفت باید با من عروسی کنی اما ای گفت متاسفم من قبلا ازدواج کردم و اون منتظرمه و همه گی با هم از سوی قصر اومدن بیرون وقتی همه آدما از سوی قصر خارج شدن قصر بلافاصله آتیش گرفت همه ی اون مردا و زنا به خونه هاشون برگشتند و استرینا و خدمتکارش هم با پسر پادشاه هند و همه اون جواهراتی که از قصب برداشته بودن به هند برگشتن. استرینا با پسر پادشاه هند ازدواج کرد و برای همیشه خوشبخت با هم زندگی کردند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 ادساین مهران دوستی